بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين واله وصحبه اجمعين وبعد موضوع مصلاي حديث شرح المنقذمون اخرين مبحثي که داشتیم بحث الفاظ جرح و تعدیل بود بحث اون الفاظی که دلالت بر وضع و دروغ بودن حدیث میده از جمله الفاظی که صریح به اغلب الناس یا درباره یا روایت مخدوب موضوع باطل اینا لفاظی صریح در عدم صحت حدیث بل بلکه دلیل بر موضوع بودنش مطرح بودنش و اینکه اون حدیث به دروغ بر رسول الله صلی الله علیه و سلم شکونده شده گفتیم از جمله الفاظ غیر سریح به اعتباری به خود حدیث برمیگرده و به اعتبار دیگر به خود رابی الفاظی که به خود رابی برمیگرده مثل من بلایا لهو بلایا من طامات از طاماتش از, از مسائبشه از نمیدونم حرفای بزرگ و حرفای بیهودشه اینها ها الفاظ غیر سریحه یا غیر جازمه در رفعه سریح در این که اون رابی دروغ میگه اما خود حدیث یعنی نقد خود حدیث با الفاظ با الفاظ تریح غیر اجازه مثل چپه موبر یا که انه هم موبر این جز نقضه هایی هست که بر حدیث میشه که میشه گفت دلت بر برد و عدم اتفاد و عدم نسبت عدم صحیح بودن نسبت دادن اون حدیث به رسولات اون است اما الفاظ کنایهی الفاظ غیر سری گفتیم حالا چیزهایی برمیگرده به خود راوی مثل بحث قبلی آفات و فلان برمیگرده به خودش راوی یا ساخته یا حالکه اما لفظهای کنایهی الفاظ غیر سری لا یصح یا لا یصح فیه شی لا یثبت اینا الفاظ دو پهلوست جز الفاظ دو پهلو که در نزد هر امامی یک معنای خاص خاص خودش داره علامه البانی وقتی میگه لا یصح وقتی که این لم تو بیکار میبره صحیح نیست حالا شاید در ذهن خودمون باشه لا شاید معناش اینگه صحیح نیست لیکن علامه البانی به این معنا که صحیح نیست استفاده نمیکنه لا یصح یعنی اینکه این روایت اصلی نداره این روایت موضوعه لا یا شو ناادده الب یعنیچ وج این به باید است نادش درست نیست و جمهور وقتی که اینلبظو به کار میبرن محصودشون موضوع بودن حث نیست سندش کاشید حث سید لازم موضوع باشه نه لازمش موضوع بودند نیز بلکه احتمال داره ضعیف هم باشه از جمله آنها علامه زرکشی که نقد میکنند در کتاب نکته اش از ابن اصلاح که میگه بین قولنا موضوع و بین قولنا لا يصحون كبير چون ذین فرق به تیوریه بین گفته این موضوع و حدیث ثینی فان الاول الكذب والاختلاف اول یعنی موضوع بودل حدیث دروغه خلق شده درست شده و ظني اخبار عدم الثبوت اخبار عن عدم الثبوت خبريث هذه الحديث الثابت ثابت ولا يلزم منه اثبات العدم وهذا يجيء في كل حديث قال فيه ابن جوزي لا يصح ونحوه التاخرش وهمشين علامه ابن حجر عند المصاحبي ك في التفريق بين ان دو جملة وهم نقلن در وقت لاثبوت اولى لا يصح علمی میاد در بحث خود علامه آلبانی مثال پایی که در کتابش صدری حلیه تزیته میاره در صاب این که مثلا فلان صحیح نیست یا اصلاً اعتبار نداره نه خب اینم از بحث الفاظ و اون جملاتی که سلالت بحث حریف میده میمونم احباب حسی که مالا خاصی که یکم بحثش باز بکنیم دروغ بستنه بر رسول الله صلی اللہ علیه وسلم از کی آغاز شد؟ بست دروغ که در هر عمتی هست دروغ هر کسی بیگه لیکن از کی اشخاصی اومدن به خودشون اجازه بدن که بر صاحب وحث بر رسول الله صلی اللہ علیه وسلم دروغ بگن خب مسلمان وقتی میاد یک شخصی به خودش اجازه بده که وکیل مدافعی نداشته باشه اون رسول اون رسول رسول خدایی که که به اصحابش نقد کرده وکیل مدافعی نداشته باشه اشخاص به خودشون اجازه میدن راحت که به دروغ مثلا به فرد نسبت بدن مفیانبر مثلا بحث یکی از اسباب اصلی تحریف در کتاب های آسمانی پیشی مثل توراق مثل انجیل یکی از اسباب اصلی اینه که وکیل مدافعی نداشتن بیان بران مثلا خود عیسی علیه السلام تعداد وکیل مدافعانش چقدر بودن حواریین 12 نفر اشخاصی که دفاع بکنن از دینش و اون دینش رو مردم برسنن حالا غیر از اینکه ننوشتن خب شخصی مثل پول میاد سو استفاده میدونه پول اولین شخصی که میان یکی از اس بود میاد در بین حواریین رفتن میکنن و دین اونها رو به تحت تاثیر خب این سوی استفاده این سوی استفاده گید و این عمل کرد از وقتی انجام گرفت که کسی نبود که بهش بگه تو داری تو روخ میگی یا حرفت درستی یا بگه بهش اتا از که چه کسی نبود که بهش این حرف رو بزنه لیکن رسول مصال الله علیه و سلم تداد از حال بیش از ده هزار نفر تعداد کسانی که پرخار مثل ابو هره زیاد بودن خلافه راشدین هم بعد از اون حکومت رو به دست گرفتن کی جرعت میکنه عمر زنده باشه و به خود اجازه بده بیا دروغ بگیر یا ابو بکر الله عنو باشه دروغ بگه خب مسلم کذب میاد باشه جنگ میکنه لیکن مسلم کذب نگفت بیا دروغ از سر و از سلا بکنه ادعات هم من قیانبرم بر من رحب میشه خب این مبارزات آغاز شد با این اشخاص دروغ ب از که شروع به اشخاصی اومدن شروع به دروغ گفتن بر رسول صلی اللہ حالا ادعه ایم گفتیم از روافض ادعا دارند که در زمان خود رسول الله صلی اللہ علیه و سلم دروغیانی بودن و هم گفتند صحابه دروغیان اصلا الا سه نفر وقتی که از خواب کافر بشن مرتد بشن خب لازمش چیه؟ لازمش که دروغ هم بگن در نمدشون، در اخبارشون، مثل همون اتحاماتی که بکیم به ابو برر رضی هم می زنن خب از جمعه کسانی که اینچین اتحاماتی والد می گنن مثل هشان معروف هاشم معروف برشت هاشم معروف رافضیه که می آن می که احتمال داره همون که کما خودمون دروغ می برای خودمون عادیه خب اون هم مرای خودشون باید عادی باشه خودشون ها دارم قیاس می گیرم برکی؟ بعد از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله فزیک تکانیک زیادس رسول الله صلی الله علیه و آله تربیت شدن پس از جمله شبهاتی که داره میگه که خب اگر قرار باشه که ما دروغ بگیم اونها هم شاید هم دروغ بگن خب چطور ما به تشخیص بید این حرف دروغ دروغ یا دروغ نیست چون وسیله ای برای تشخیص دروغ بودن و دروغ نبودن نداریم در نتیج در نتیجه پس دروغ خود با خود باید بگید واقع شده. چون وسیله برای تشکیل تدارید. خب میاد. این شبه هات رو حالا همطور ادام میده که خلالتی بحثش در همینه. و استبدال میکنه. حالا متاسفانه بعد از اهل سنت خودمونم گرائش بینستک پیدا کرده مثل احمد امین و از علما محمد محمد عبی زهر که میاد تحت درسین این فکر قرار میگیره بس دلال میکنه به واقعی نزول یا ورود حدیث من کذب علیه مسعمده یک شخص درو در زمان خود رسول سلام میگه که بعد بس رسول سلام گفت که فرمودن که من کذب علیه مسعمده فلیه سبب مقاده من جواب ما برای این فروده اولا این حدیث به هیچ وجه ثابت نیست در سبب ورود. در سبب برود این حدیث که شخص دروب و بررسالات جوابش دادن با این حدیث تحديث کردن این حدیث به هیچ وجه ثابت نیست این اولا دومن اگر بگید این واقعه درسته که این واقعه یک بار روح داده در صورت که حدیث من کذب علیه متعام بدن اصافت صحابه نفیل کنند این حدیث ها چطوره که صحابه خديم و جديدشون ابو هرر و غير ابو هرر, هرر, هرر. بيان این حديثو ناقودو و این مواقع اي ایک باشه ثبوت ما اینکه اگر بالفرد ما بگیم که این روايات صحیحة عبرات هم تو که در اصول شارعات داریم در قوارج و تفقیداریم عبرات بعموم لفظه نبغوذر زرد عبرات بعموم لفظه نبغوذر مثل بالفرد اون شخصی که همت جوده برسال شده نماز خود گفت ارجا به اینکه لم تصلی بر بیگ که تو نماز ده دوباره نماز بکن نماز دوباره بره خب بعدش بیا دادن نماز اینطوری بکن اونطوری بکن حالا اینجا این واقعه خاصه اون شخص یعنی اون شخص چون سری نماز خونده فقط نماز خودش درسته اگر ما نماز سری بخونی نمازمون درسته یا نه هر کسی که مثل اون شخص نماز بخونه نمازام نداره کدوم یک روز توبومی. هر کتی منطور شفت نماز بگره نماز دارد. چون ابراد به چیز عموم لفظه. ابراد به عموم لفظه. خب. چار من. این که ما در طول تاریخ منافقین داشتیم. عبدالله بن اوبی و دیگر اشخاصی که جز منافقین بودن. از هیچ کدوم یکی اینها از این منافقینی که مشهور بودن بستن خدای فرحی اللہ عنه. اسامیشون میدونه هیچ یک از اینها روایه نیدارند و احتمالی هم نید که بر بگه و به فرد بگیم که نه که مثلا مناطقی شاید روایه داشته باشن و کسی اونها نشد خیر از رضا صلی الله علیه وسلم برای خودشون لیست داشتن که شخص. چه شخصی نماز صبح میاند چه شخصی نماز صبح نمیاند چه شخصی نماز اعشاق حضور ده به حضور نداره حدود یاد میکرده مشخص بود براشون که کی نفاق در دلش هست کی در دلش نیست و پنج و من نمی ما هیچ دلیل هیچ دلیل و مدرکی و روایتی در وقوع درو در زمان عبوبت در زمان عمر رضی الله در زمان هیچ کدومی که این اصحاب نداری درو جرد این ها ثابت نیست درو جرد درو جرد دروغ در زمان هیچی که از از ثابت نیست اینم از قول اول قول دوم که در این مثلا نقش شده که دروغ در زمان خلافای راشدین آغاز شده در زمان در, در زمان عثمان رای اطلاعن بدل این که عثمان به شهادت می رسد و در زمان علی رضی اللہ عنه وقتی که عبدالله بنسبه یهودی میاد بعد از اینکه خوارج میاد از آن زمانه که درو گفتن آغاز میشه و استدلال میکنم به دو چیه یک گفته ابن سیرین لما وقعت الفتن قدو سم مولانا رجاله وقتی که فتنه افتاد گفتن که چیه رجالتون اشخاصتون راویانتون برای ما مشخص بکنی سمولانا سم رجالتون خب این گفتم که پس لازمه شه که حتما درو گفته شده که ابن سینیش این حرفی میزده که میگه راویانتون برای مشخص بکنی حتما راویان هستن که درو میگن از اون روایاتی که بهش استدنال کردن روایت ابن عباس رضی الله عنه ما که میگن لما رکب ناس و سعبال ولول لما کن نحضه تا آخر روایت الان جوابمون می که ابن عباس رضی الله ما میاد میدید که ما همینطوری روایت نقل نمی کردیم خوصاً وقتی که لا مردم دیگه حرص و حرص و جوج از خاب رو نداشتن دیگه در این زمانی که لا خالت مردم اینجوری شده از دین به دور شدن دیگه ما طوری شده که همینطوری نمی آمد حدیث را نقل بکنیم خب این عموم عدده دیگه اونهاست که استدلال بهش میکنن که این فتنه و کشه شدن عصمان رضی اللہ عنو به شهده بسیدن رضی اللہ عنو یکی از ها بود بر درو گفتن بر رسول الله صلی اللہ علیه وسلم خب جواب این قول رو خواهیم داد لیکن قول سبوب هم میگی که قول صحیحتر از قول قبلیه و هر دو صحیح تر از هر دو دو قوله این که این فتنه حالا غیر از بحث تدویم چون اون فتنه بحث املیتین این جوابش خواهیم داد لیکن بحث دروبستن بر رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اینه که در یک سوم آخر قرن دوم یا برخیص از یک سوم آخر نصف دوم قرن اول یک سوم نصف دوم قرن آخر یعنی از افراد ببرد از افصاد اجری کمری بعد یک ثومه نصف نیمه دومه قرن اول چرا از این دوره ما ترجیح دادیم که وضع آغاز شد اولا به خاطر اینکه حرمت از حضرت الله صلی اللہ و جللل زیر پا بذاشه دیگه کسی با اونها رجوع نمی کرد دیگه خیلی از را فول کردن خوستم بزرگان آنها دومن بخاطر دروغ بستنه برانها سوان بخورت تفرق, تف... تفرق مسلمانها وقتی که فرقه مرجع پیش اومد خوارج پیش اومد این گروه ها وقتی که بوجود اومدن خود به خود هر قومی هر دروهی برای خودش اومد حدیث را برد بخورت از خوارج از خوارج از خرافی که از عدلی که دلیل می ده بر این که در این زمان در این دوره درو آغاز شده واقعی مقدار سقفی واقعی مقدار سقفی که میاد در نظر ابن ربع یک از علمانی هنده سنت و میگه که برای هفتت دینار به پول میدم برای من یک حدیث نقل بکن بعد میگه که من حدیثی رو بهت نقل نمی کنم حالا تا این که پشته میشه شوید صریح از آن خود سخنهایی هست، حدیثهایی هست که از رسولات از رسابته که این واقعه، این دروب در این کتوم آخر قرن نیمه قرن اوله حدیث از ما رو یاد داریم از ما بسید بسید رضی اللہ عنه بسید رضی اللہ عنه وقتی که حجاج بن یوسف اوماده نزد اسماء و گفت که برو جسد فرزند دهطلبن زبیر رو دفن بکن دیگه تیک تیکش کرده بود و کشته بود برو کشته بود حجاج بن یوسف عبد بن زبیر که اصحاب رسول <سؤال> الله پیامبرشون که دیگه دارن اسم تحنیق میشه درسلاق خرما در روش می‌ذارن وقتی که عبد الله بن کشته میشه میاد حجاج بن در نزد اسماء میگه برات جدی که کارمند تو یا به بد بد نش بگو. اعتمد کرده این شخص مییسته. میگه حالا اینم در سال 67 یه چیز نزدیکی همون سال افتادی که ما گفتیم. از ما به تجربه جراد منان میگه که فکر که من اون زگی هم که تو فکر می‌کنی. من ذات النباقینم. من دو تنطبق دو دا کمر بند شدم یه کمر بندی تن هون میکنه به رسول الله صلی الله علیه و آله و او با گفتن به خاطر و اما نسق به اون فرزندم رو می‌دستم من هر اون زنی که فکر می‌کنی نیستم فکر نکن که می‌تونی منو باجلو بکری برامون جلو ویش مییسی حیثم در زنی مسلمه جلو ویش مییسی دیگه و اما الهذاب فقط رینا الكذاب هذا من مهنی مضطرد میشه در زمان عبدالملک بن مروان در سال شب سهب کشت نمیشه بس کذار این شخصی که دروگون هست و دروغ دروگ برای سجاعت ازالم میبند کی بود؟ اولی شخصی که بخواست اجازه داد همین مختار سقفی بود که به در سهب کشته میشه و اما المبیر مبیر این خوندی مبیر کسی که آدم و آد انسان ها را میگوشه مسلمان ها را میگوشه حالا دلالت بس خونیزی هست این کلمه فعند یعنی تو حجاش خوصاً حجاجی کلا واقعاً همین حجاج دلالت بر این میده که یک از دلال نبوبه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم یک از کسانی که که بیشترین خون مسلمان رو نیسته حجاجه حتشن که امام زفری میگه که از حجاج بدتر او مسلم و قراطانیه. که خون خیلی از علمای خافعین و دیگر علما رو میدیده خبت ما این قول رو ترجیح دادیم با این عدلهی که داشتیم. جواب عدلهی قول دوم. اولا اثر خود نسیری دلیل بر بکر از روغ در زمان فتنه و قفل عثمان و جنران نمیده. بلکه دلیل بر این میده که از آن دوران شروع کردن به تثبت ба رواتشون ки роватшон ва биянишон аҳли суннатро аз аҳли ғайри аҳли суннат бишносанд. лама вақаъат ал-фитна қалу тамُّ لنا риҷалуку фананзура ила аҳли суннат фанаъхӯذ хадисаҳум туахриҷ михоҳад мушаххас кунад ки ки аҳли суннат مدافع حدیث رسول الله صلی اللہ علیه و سلم که از اون نخل بشه نه اینکه در اون زمان کتی دروغ گفته یا با اجازه بده دروغ برای رسول الله صلی اللہ علیه و سلم برنده اما اثر ابن عباد ابن عباد صدی اللہ عنجد معمرین از کسانی که اون زیاد کردن از خابه رسول الله صلی اللہ علیه و سلم و این گفتش که لبنش در نظر مسلمه از طاویس که بشیر ابن اوکع یاد حدیث را نمی کنه ابن عباس میگه عدل حدیث کذا عدل حدیث کذا بار بگه حدیث دوباره بار بگه چند بار برش میگردن میگه دوباره فعادلا دوباره حدیث تکرار می اون بشیر ابن بعد بشیر ابن اوکع ناراحت میشه میگه ما ادری اعرست حدیث کلا وانکرت هذا ام انكرت حدیث کلا وعرفت هذا میگه من نه میگه این حدیث من رو همه فهمیدی و این فقط تنها رو انکار کردی یا اینکه حدیث من رو کلا انکار کردی و, و این رو فهمیدی و این رو فهمیدی یعنی میخوای این حدیث را بدونی یا اینکه تمامی حدیثم یعنی این حدیثه اشتباه بوده یا همه حدیثم اشتباه بوده ابن عباس میگه کن لا عن رسول الله الا لم يكذب عليه میگه ما از رسولت نقل میکردیم حدیث رو نقل میکردیم چون کتی دروق نگفتی فلما را که بلناس و صعب و ذلول ترخن الحدیث عن وقتی که مردم شروع کردن دیگه به دور شدن از دین صعب و ذلول دیگه معروفه دیگه سلمه کناهی هستن این که مردم از دین دور شدن یعنی چسبیدن به دنیا دیگه وقتی که مردم متفرق شدن مردم دیگه به دنیا چسبیدن میهی و حدیث را نقل کردن به مردم دیگه رها کردن چرا چون دیگه شاید یک شخص در حالت ای یک شخصی که نمیدونه بیاد استنباط منفی بکنه میگه دیگه ما حدیث رو که همینطوری نقل میکنیم که منظورش اینه که ما به هرکسی حدیث رو نقل نمی کردیم بلکه به کسی نقل میکردیم که بفهمد به مردم همینطوری به مردم اصلا مراکه به ناسا بعمل درو به مردم همینطوری نقل نمی پس اشخاصی خاصی داشتن که بهشون نقل نه این ح... اصلا حدیث رو نقل نمی نه بلکه به مردم و کسانی که تازه وارد اسلام شده بودن خصوصا از عاجم که شاید فهمش رو ستین اونا درست باشه احتیاط میکردن و همینطوری نقل نمی کردن بخاطر همین این که به بشهرم رو کرد میگه دوباره بر بگرد دوباره بر بگرد تا دروف در فهمه گفت اشتباه نفهم این واقعه در زمان عثمان در زمان علی عبدالعه هم بوده نیست دلیل بر این, این تحدید زمانی نیست از کجا معلوم این در اواخر عمران عباس نبوده در اواخر قرن عباس نبوده این چیزی که ما بهش اعتقاد داریم یعنی در بحث این روایت حد که بحث اینکه دروغ واقع شده در این حدیث در این اثر نیست یعنی که مثلا به فرض میگن ان ما كنا نحدث عن رسائل لم يكذب عليها میگن ما از حدیث از اثر نقل میکنید چون دروغ گفته نشده بود آیا چون دروغ گفته نشده بود لازمه است که الان دروغ گفته شده خیلی وقتی که صحابه بودن پدران ما پدران ما خصی درو که نمی گفت هیچ کسی که مکسر نبود کسی که صاحب حرد و ادقان نبود به خودش اجازه نمیدار که حدیدون نبود کنه یک شمط شدید صاحب فتنی بیاد بگه شما چطوره که علی رد الله عنه بیست سال وقت که انبارت از زنم بوده لیگه شما در صحیح بخاریتون ده تر وقت بیشتر ازش ندارید ابو برره که سی سال آخره بعطه که رسولت از زنم مسلمان شده ۵۰۰۴۰۰۰۰۰۰ تا حدیث درست دارید چی جوابش دارید؟ اولا علی رضی الله عنه جز کسانی نبوده, نبوده که ۲۴۰۰۰۰۰ بارا صدادتانم بوده جز کسانی نبوده که همیشه می نشسته در کنان رسول الله که حدیث بشنبه ابوهره جز کسانی بوده که در مسئل نشسته و حدث شده در نظر رسول الله در, در, در, در این بوده که حدیث رو بشنبه دو اونطوری که شما میگید ابو حرار این از حدیث داره این قابل قبول نیست این که خیلی حدیث ریاده اگر ابن حض حدیث شماره کرده شمارهش کرده سعین هزار این سعین هزار و سی سده خوردی،, خوردی اگر تکرارش رو حضر میکنی به هزارت حدیث به دور آیا این ایک صحابی که سه تا همراه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم هزارت حدیث بعیده من؟ علی را دماران از که خلافت رو دسته قبل از قبلتی که خلافت رو بدت بگیره مشغوله چی بود؟ سیاست، جنگ، جهاد اما ابو حریر رضی اللہ عنه وزیفه چی بود؟ خطوه دادن، نقل حدیث کردن، تعالیم وزیفه تعلیمی رو داشت یک معلم میتونه حرف بیشتری بزنه به یک مدیر کدوم یک بیشتر؟ سخنش بیشتر در سر کلاس ها یک معلم، یک دبیر که گلاسش نتا درس میده متلمن حادثی بیشتر نقومی کنن ولی اون مدیر چند نفر از آنشون هرمشون بیشترون یک نفر دو نفر فقط سر سب سوگاه ها اینم همون حالته اینم همون حالته یک شخص مدیر یک شخص خلیبه وقتی نداشته که بیاد در نظر مردم بنیشینه به حادثی رو نرسون میکنه خب این خلاصه یه بحث وقوع وقت، بس همونطور که توجیح داریم آغاز وقوع درو و شروع درو گفتن برای سلام در نهایت فرن اول بوده نه در نیمه اول این بحث وضوع فقط من سری از تا مثال تا به و ستره موضوع حدیث موضوع و ضعیف فقط چند تا برمان مثال بخاطر این که تشکیص بیمه یک عالمی که مثلا بالفرد یک حدیث رو تشکیص بیده مثلا بالفرد نهی که فلان حدیث موضوع چطور بگه یک عالم به خودش اجازه بده که مثلا بالفرد این حدیث موضوع راهاش، طرقش مثلا مثال هایی که خواهیم ده اولا حدیث حدیثی که در جلده دهومه قسمته اول بسلطان جلد الدهوم قسمته اولش حديث شماره 4513 4513 حالا به عنوان مثال ملک موكل بالقران كما قراه من اعجميا وعربي فلم يقومه قوامه الملك ثم رفعه قوام او قواما هيك فرشته موكل بالقران كجار عربي واعجمي بون دهونش دروتمي كنه اژمد درست دین یک شخص اشتباه قران بخونن فرشته بیاد زبانش درست کنه درست بکنه حالا این معماش تخت یعنی ما خیلی ها میبینیم که قران اشتباه میخوانن ما خودمونم اشتباه بونیم کجاست این فرشته کی زبان ما درست بکنه خب این حدیث موضوعه زیلمی روایتش میکنه از حاکم علامه البانی میگه این حدیث موضوعه به چه لذی به لته المعلق ابن هلال الضحان الكوفي امام حافظ, حافظ ابن حجر اتفق النقاد على تكذيف اتفق النقاد على تكذيف فإن ذي كذلك الفاضي سريح در جرح شخص الضروف والله غير ذي كبقاته نميكون إن حديث شخص الضروفين در النار حق فسيقين إن حديث موضوع في كثير من الشخص يقول إن حديث البانی از خودش خودشو برده که بیده که مورسو خب از جمله ها در همین مجیس در همین جل حدیث 4549 4549 میده که من سمع الى قینتم صبح و فی ودونیه الانوکو ایام القیامت کسی که گوش و موسیقی بیده در, در روز قیامت سرب جوشی یا ماده جوشین در کشاش ریخ تنگیشن این حدیث میگه که چی؟ باطل حدیث باطل طوال ابن عصر که تاریخ دمشق میگه که تا آخرش وکر نو لمی قردت وکر تا آخرش کلا بحث بودلانشت بیگه میگه برگشتن به کتاب تاریخ دمشق ابن عصافر که اصل حدیث در اونجان خیلی دولما مثل Imo Amin Assassin Bouardf ändu, imamMunabibhanidah Barashnu, томnet nah marriage, imam Amin Qudamidah Qadar Once a port various ideas decent ideas, an Abu Abdullah Philippi sobre all the blefirsits out of theә Dr. Almanikah etuar these people sang a gift with Almanikha. Bu Imoettin Imoq Ab engineering and this guy said he didn't know it. 편 he yelled the aunque looking진 as Polen Al- in take and Abou, Abdul Abdullah an یکی یک شخصی در حلب روایتش کرده شخص, شخص خوبیه میگه باطله این حدیث باطله یعنی اکلی نداره یعنی چی؟ موضوعه باطله یعنی موضوعه و این حدیثم شما از قاطی کرده من رابیش با حدیث السمع الى حديث قوم و هم ناو کاره هم کسی ها. که گوش به حرف قومی بده که من قوم جسده شده باشن صبه فی وزنیه الان و فی اومن قیامه این حدیث دار این هم از الفاظ یک از الفاظ غیر صریح یا صریح غیر جازم در باطل بودن یک حدیث حالا مثال ها زیاده یعنی وقتی که تسلی زیفه و موجه نگاش میکنید میبینید که یعنی علامه البانی مثلا خیلی از احادیثی که میاد نقدش میکنه در اینکه که صحیح نید و یا اینکه بوتله وموزه زياده الجبلة حديث من أتقل حديث شورة مسافة عن جوشي من أتقل رمحا في سبيل الله عقله الله من الذنوب يوم القيامة من الحديث تخرج عبو نعيم عن بقي ابن الوليد عن مسلمة ابن علي عن عثمان ابن عباطة واخرش يگ ابو نهيب يگ غريب من حديث عثمان النبي لا منتبو الا من حديث بطيه قلت وهو مدلس بطيه بن وليد مدلس يعني ايش؟ تقليد بطيه ميكون و هو مثلا؟ متهم بالوضع متهم بالوضع خف ينفسر شي مش بطيه قد ايش شغله بوايد ميكون و كثير ديجر ما داره غير از اصحاب سنن اذا كتبوا سنن نقلها مش دي ترى ايش شغله التل باید چی حکمی بهش بدیم؟ موقع، حدیثه؟ موضوع یا دروغ و غیر از این که در اثنادش عثمان ابن عطا ابن نبی مسلم خراسانی است که زعیفه و پدرش هم مدلطه، یعنی چار پا حلت غیر از ضعیف و مدلط و تدیلیت سکبیهش و غیر از متهم به دروفش، این کلن حدیثه که اثنادش کلن فاقته و اثنادش موضوعه است خب این خلاصه بحث امروزمون و مسالهای دیگری هم هست که علمه آن بانید این کتاب ذکر میکنه که میتونید خودتون بهش برگردید. خب سبحانه کلالو همده سبحانه کلالو همده استان بان که که